بسم الله الرحمن الرحیم برامی خداوند بی‌اندازه ربع نهایت بارشت قسم با کشتگانی که به شتت می‌کشان قسم با آنانی که با نشاط می‌گیرند قسم با شناورانی که به گناه شناوری می‌کنند قسم با آنانی که پیش پیش‌دستی می‌کنند قسم با آرهایی که کارها را به تدبیر به سر می‌رسانند روزی که همه این زمین را لرزان دهی بلرزاند یعنی سور اول دمیده شود و از پای آن هم ردیف آن بیاید یعنی سور دوم دمیده شود در آن روز است که در تب و تاب می باشند و هایشان خیره مانده می گویند آیا ما به آفری نشن و خود بازگردانده خواهیم شد؟ آیا چنین خواهد شد اگر چه استخواان های پوچیدهه باشید؟ آنگاه میگویند این بازگشت در این حال بازگشت زیان با است؟ بگومون این بازگشت با آوازی شددی صورت میگیرد؟ پس ناگهان همگان و میدان قیامت قرار می گیرد؟ آیا داستان موسی و تو آمده است؟ هنگامی که پروردگارش در وادی مقدس تو وا یعنی تور او را فراخت و به او هدایت داد که نزد فرعون برو که او واقعا سرکشی کرده است و برایش بیگو آیا میل داری که از گناه پاک شوی؟ و تو را پروردگارت راه نمایم تا از او بترسی؟ در این حال موسی و او موجزه بزرگ را نشان داد ولی او تکذیب کرد و نافرمانی نمود سپس روی برتافت و سخت تلاش کرد سپس مردم را گرد آورد و ندا در داد و گفت من پروردگاری برتر شمایم همین بود که خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد گمان در این رویداد عبرتی است برای کسی که بترسد آیا آفرینش شما دشوارتر است یا آسمان که خداوند آن را بنا کرد سقف آن را برافراشت پس آن را برابر ساخت شبش را تاریک کرد و روزش را روشن ساخت و سپس زمین را گسترانید از آن آب آن را و علفچرهای آن را بیرون آورد و کوهها را پایدار و استوار ساخت برای بهرۀییابی شما و چارپایان شما سپس شون آن واقعه بزرگ بیاید روزی که انسان فعالیتهای خود را بیاد می آرد و دوزخ برای هر بیننده آشکار می سپس هر که سرکشی کرده بود و زندگانی این دنیا را برگزیده بود پس بیگمان آتش دوزخ جای اوست اما کسی که از مقام پروردگارش ترسید و خود را از هوا و هوس باز داشت پس بهشت جای اوست از تو در مورد قیامت می پرسند که چی وقت لنگر انداختن آن است یعنی واقع می شود از یاد آن در چی مقامی هستی یعنی در زمینه چه چی اطلاع داری؟ نهایت علم آن با سوی پروردگار توست بیگمان تو صرف بیمدهنده هستی برای کسی که از آن بترسند روزی که به آن رو شوند گویا ایشان هیپندارند که در دنیا جز شام گاهی یا صبح گاهی درنگ نکردند.